سراقه اهون ویدی گاتها یاسنا ها ت بیست و هشت یانیم منو یانیم وچو یانیم شیاطنم آشونو زارا توش فرا آمیش اس پنتا گاتهاو نمو و گاتاو اشعونش احونا ویتی گاتاها یسنا حاته 28 بند یک احیا یاسا نمنگها استان زست و رفز رحیا مینیه اوش مزدا پورویم سپن تحیا اشا وی سپنگ شیاوتنا ونگه اوش خراتوم مننگ ها یاخشنویشا گوششا اروانم احونا وی تیگاتا ها یسنا حاته بیست و هشت بنده دو یه واو مزده اهورا پیری جسایی هو مننگ ها میبیو داوی احوام است و تسشا هیتشا مننگ ها آیبتا اشاد هچا یا ایش رپنتو دعیدیت خواتر اهونوی تیگاتا ها یسنا حات بیست و هشت بند چهار یه اروانم من گعیره وحو دده حطرا مننگ ها اشیشچا شیعو تنانام ویدوش مزدا اهو رحیا یوت ایسای تواجا اوت خسای اعش اشحیا اهو ویتی تیگاتاها یسنا حات بیست و هشت بنده ده ات ینگ اشاعت چا و ایستا ونگ اوش چا داو مننگ هو ارث مزدا اهورا ا اه ای بیو پرنا کامم ات و شمای بیا و ازا غریتیا و اینتیا سرواو اهونویتی گاتاها یسنا حادثی بند نه اچا توی و ام خیاما یوی ای ایم فراشم کرنا اون مزداوس چا اهورا وینگ هو. آمو یست را برنا اشاچا هیت حط را مناو بوت یت را چیستیش انگ حط معطا اشتویتی گاتاها یسنا حات چلسه بند یک اشتا احمایی یهمایی اوشدا کهمایی چیت و سخشیانس مزدا دایات اهورو او تا تویشی گت توی وسمی اشم دردیایی تت مویی دا آرمیته رایو اشیش ونگه اوش گعیم مننگ ها گات ها یسنا فات چهل و پرنج بند یک ات فر وخشیا نو گو شدوم نو سرودا یه اچا اصنات یه اچا دورات ایشتا نو ویسپا ویس چیتر زی مزدانگ هدوم نویت دایبی تیم دوش سستیش اهم مران شیات درگوا هیزوا آورتو اشتویتی گاتا حات چلپنج بند دو ات فراوخشیا انگه اوش مینیو پاو او رویه. یا یایا سپنیا ویتی مروت یم انگرم نویت نا مناو، نویت سنگ ها، نویت خراتاو، نا ادا برنا، نویت اخزا، نا ادا شیوتنا، نویت دعناو، نویت روانو حچا اینته. یسنا حاتسی یک بند یازده هیت نی مزده پاورویم گعه چا تشو دعه چا توا مننگ ها جا. هیت است ونتم داداو شیاو سینگ سنگ هازچا یترا ورننگ وسا دایته اهونوی تیگاتاها یسنا حاتسی بند دو راوتا گیوشایش و هیشتا اوائنه تا, او تا سوچا مننگ ها آور ویچی وی تحیا نرم نرم خواخیای تنویه پرا مز هو و احماین سزدیای بودند و پیتی